بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآل والصحبه جمعين وبعث وشيمين درس درسية سورة يوسف عليه الصلاة والسلام آية نودها فالمدير الله جل شأنه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قالوا اشتباهشون پی بردن برادران یوسف علیه السلام اومدن نزد پدرشون برای اینکه برای آنها بعد از اینکه به اشتباهی خودشون پی بردن و به گناه خودشون براشون طلب استغفار بکنه طلب مغفرت بکنه ان كنا خاطئين آثمین كنا آثمين اشتباهشون عمدی بود اشتباهشون عمدی بود ورا الله خطا کار بودیم توبه کردیم تو هم میخواهیم که از الله بخوای که تو رو بپذیره ما رو ببخشه چرا از یوسف علیه السلام تقاضای بخشش نکردند انتخازای این نکردن که طلب مغفرت براشون بکنه. یوسف قبل الله الله از اینکه ازش بخواهن رو بخشید طلب مغفرت کرد. یخفر الله لک. الله شما رو ببخش دیگه نیاز نبود که طلب بکنن، درخواست بکنن از یوسف علیه السلام. سوره یوسف. یوسف نمادی از پیشتازی به خیر و خوبی و احسان و نیکی و ولی خب اینجا مقام دعای بزرگتر هم جای خودش داره. یوسف از خودشون کوچیکتره. یوسف پیغمبر یعقوب پیغمبر علیهم الصلاه و السلام. علیکم بالاکابر رسول الله صلی الله علیه و مش بزرگانه دعای پدر مستجابه خصوصا در حق فرزند بترسین که بدی از ما سر بزنه سبب نفرین پدر بر ما بشه خیلی بده سخته دامنگیر میشه دعای پدر از دعاهای مستجاب در حق فرزند خصوصه خب اینجا فرزندان یعقوب علیه السلام والسلام تقاضای زغفار میکنن از پدرشون خب یعقوب یعقوبم پدر دلسوزه سوز سلمن میکنه براشون و دعا میکنه یک مطلبی هست اینجا یک انحراف اعتقادی پیش اومد در یک بره زمانی در ابتدای اسلام قرن اول کسانی مثل جهم و صفان جعد بن درهم این دو تا شخص شاگرد یک یهودی بودن تالو تالو هم شاگرد لبید بوده این دو نفر بهانه کردن فتنه خوارج وقتی که دیدن خوارج تکفیر میکنن به خاطر گناه هر کسی گناه مرتکب شد کافر سرش بزن هر کسی دروغی گفت غیبتی کرد فلانی کرد بکش کشت و کشتار اینا فتنه رو انداختن فتنه شون چی بود یک از فتنه هاشون یک کسبتناشون اینه که ایمان در قلب کاری به عمل نداره حالا میخوای زنا کن میخوای دزدی کن مثلا گناه انسان ربطی به ایمان انسان نداره میگه الله انسانو قراره که محاسبه بکنه بر حسب عملش مهم اینه که تو دل چی باشه تو دلت صاف باشه دلت پاک باشه این اعتقاد مرجعه بهش میگن ارجاء یعنی جدا ساختن عمل از ایمان چه عمل قلب چه عمل جوارح رو جدا از ایمان میشموری ارجا بهش میگن کسانی یعنی که عمل رو جدا از ایمان میساختن و می گفتن انسان هر کاری بکنه مادامی که مؤمنه مثل ملائکه است ایمان کم و زیاد نمیشه ایمان انسان چیزی ثابتیه لت ایمانش وارد نمیشه طب سوالی که اینجا مطرح میشه پس چرا بهش درجات داره هر کسی لیاقت یک درجه ای داره بالاتر و بالاتر میره پس چرا پس چرا راست اصلا در درجه بالای بهش قرار داره پس چرا صحابه خودشون هم فرق میذاشتن بین خودشون میگفتن بعد از پیامبر کسی ایمانش مثل او بر نیست و بعد از او کسی مثل عمر نیست رضی الله عنه پس چرا رسول الله صلی الله و سلم گفتن الایمان بضع و 70 شعبه ایمان افتاد و اندی شعبه است اعلی ها بالاترین شهادت گفتار زبان و ادناها اماته الاذ عمل جوارح والحياء شعبة من شعب الحياء قلبة عمل قلبة شعبية شعبية إيمانة عمل قلبه أس إيمانة عمل جوارحته از ایمانته گفتارتم از ایمانته هر کاری تو انجام میدی از ایمانته خب اینجا وقتی که اینا طلب استغفار میکنن به خاطر گناهشون یعنی چی یعنی ای که این گناه صدمه بر ایمانشون وارد کرده و به خاطر این گناه باید تابانش در جهنم بس بدن رب داره بیمونشون یا نه رب داره بیمونشون اگر رب نداشت بعد بهشتی میشدن دیگه نه عذاب میکشیدن نباد اینجا ترس داشتن از اینکه عذاب ببینن ترس دارن از عذاب ببینن چون ترس دارن از عذاب ببینن و ایمانشون ضعیف شده به خاطر اون مکرشون و غترون دروغشون بخاطر اون حسادتشون یه گناه نبود، دو بود، گناهان بود، گناهان زیادی مرتکب شده بودن. دروغ پشت سر دروغ و مکر و حیله و نیرنگ و حسادت همینو گناهه. حسادت گناهه. حسادت یعنی عدم ایمان و قضا و قدر، یک از گناهان کبیر است. سخته سان حسادت به درزه که آ چرا الله به اون داده به من نداره؟ خب گناهانی مرتکب شده بودن، خودشون مستحق عقوبت می‌دیدن خاطر اون عمل. پس عمل انسان رو جهنمی میکنه. ولی راهی برای نجات هست. خلاف خوارج که راهی را برای نجات نمی دیدن حالا چه با توبه که گناه پاک بشه و چه با اینکه که انسان عذابی بکشه و بعد وارد بهش بشه چقدر حدیث داریم یخرجوا من النار من كان في حبت و حبه خردل ایمان الايمان جهنم خارج میشه اون شخصی که یک ذره ایمان در دلش بعد از اینکه عذابش بکشه کسانی را الله مش میزنه با دست از جهنم برمی داره کسانی که پخته شدن سوخته شده مثل زغال آخر کسانی هستند که وارد بهش میشه الله اونها رو در آبی به اسم آب زندگانی آب حیات در بهش میشویه و بعد اونها رو دوباره بهش میکنه اینا سوختن به خاطر گناه ایشون رتبه برکیه رتبه بر الخوارج خوارج شفاعت رو قبول ندارن در روز آخرت مثلا رسول خدا شفاعت میکنه فرشتگان شفاعت میکنن اونها قبول ندارن در صورتی که شفاعت حقه برای صاحبان کبیره اونها که گناه کبیره انجام دادن خب اینا همه ادله ها بر اینن که انسان اگر ایمان داشته باشه یک روز نجات پیدا میکنه و اینطوری نیست که بر اساس گناهش مؤاخذه نشه نه بر اساس گناهش مؤاخذه میشه حساب و کتابه خصوص حق الناس اینجا حق رو پایمال کرده بودن حق برادرشونو پایمال کرده و حق النص. صلى صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس مفلس مدينة كير كسيك كي يتشينا درة. قفت أنا مفلس من لا درهم من له ولا دينار مفلس كسيك بقولي نادره نادرهم ينادينار يتشينا درة. صلى صلى الله عليه وسلم فرمى المفلس في أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات إنك الجبال أسلكوه ورده حسنات فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسنات قنوك قد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. ورده حسنات إذا رزق قيامات أسلكوه كوه. اس حسناته، ولكن دشنام داده، کتک زده، خونی ریخته، فیا خدا هذا من حسناته وهذا من حسناته. حق الناس، مردم حقشون رو میگیرن. حتى لا تبقى من حسناتي شيء، اس حسناتك، خوبی‌هاش از اون کوههای خوبی هیچی نمونه. فتؤخذ من سيئاتهم حقوق دیگرهم، فتؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليك گناهان دیگران که غیبت کرده، دروغ گفته پشت سرشون، ظلمی کرده، بدگوییشون کرده، دشنامشون داده، گناهانشون برداشته میشه در کفه‌ی ترازوش گذاشته میشه. ثم يكب النار. با گناهان دیگران به جهنم انداخته میشه سو مؤاخذه میشه با گناهش یا نه والله انسان مؤاخذه میشه با گناهش از عمل انسان از ایمانش به انسان مسئول در مقابل عملش و توبیخ میشه برای اساس عمل ناشایست و قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحيم قال سوف استغفر لكم چرا نگفت همونجا مثلا الان براتون طلب استغفار میکنم یعنی الان براتون آمرزش میطلبم چرا گفت آمرزش خواهم تلبید برای شما سوف یعنی بعدن براتون آموزش می طلبم مفسرین در اینجا میارن میگن که وقت خلوتی داشته یعقوب علیه السلام برای راز و نیاز برای نیایش برای دعا اونم وقت سحر نگفت الان الان دعا نکرد چون منتظر بود وقت سحر بشه و در اون وقت که وقت سجابت دعا هست که الله به آسمون دنیا میاد چون در حدیث صحیح دارین از رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا كانت ثلث من اللیل. نزل الله الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر ف فیر له وهل من داع فاستجیب له وقت سجاوت داس هر وقتی وقت لا سجاوت میکنه ولی این وقت رو الله بهش مزیت داده مزیت خاصی برتری داده الله خودش تعیین میکنه که چه موقع به سجابَت نزدیکتر باشه لا یفعل هم حکمتش در چی الله اعلم یکسم و آخر شب گذاشته سخته بر انسان الله میخواد بندگانش رو امتحان بکنه الله میاد به در دنیا می کسی هست استغفار بکنه استغفارش رو قبول کنه با. و او را بیامرزم کسی هست آیا دعای بکنه استجابت بکنم وقتی استجابت دعاست بس اینجا چنان میگن مفسرین این تصویف به تاخیر انداختن یعقوب علیه السلام دلات بر این داره که منتظر فرصتی مناسب باشه برای دعا کردن و خلوت با الله در اون وقتی که وقت استجابت دعا هست و بهترین ترین وقت ها برای دا استجابت داد آخرین ساعت روز جمعه است و یک سو ما اخر شب انه هو الغفور الرحیم الله آمرزنده است میبخشه و الله رحیم رحم داره به بندگانش بنده ای که اقرار به اشتباهش بکنه خوشحال میشه بنده اقرار به اشتباه بکنه و بعد ازش آمرزش بتلبه درهای رحمت اللهی به بندگانش دانش همیشه باز بوده و بازم هست فلان ما دخل علی یوسف ا و و کل خانواده یوسف علیه الصلاه و السلام برادرشون یوسف ا ایله الیه پدر خودش رو به طرف خودش آورد بالا بر عرش. حالا گفته شده وقال الیه ابوی گفته شده که به پیشوازشون رفت یوسف این نشانه پیشوازی یوسف میده خوشم برای اون مهمونی که قدومش الان فرا رسیده به نزدیک وارد شهر بشه، رفته یوسف به استقبالشون خاطر قدوم مهمونش. پیشوازی یوسف برای قدوم مهمانش خوشحال پدرش داره میاد. این از کرمشه. نه نشسته بر تخت ریاست که پدر وارد قصد بشه، نه به پیشوازیش رفته. چیزی خودمون داریم به اسم بدرقه، چه؟ مهمون بیاد دم در، باشم روی کنی تا وارد منزل بشه و چه؟ هنگامی که میره بدرقش بکنید آدم در این آداب رسومه آداب رسومه از این آیات برداشت میشه از فعل انبیا و کرمشون و اخلاقشون و اهمیت دادن به مهمانانشون یوسف میاد پیشوازی پدرش خلوت میکنه با پدر و مادرش اینجا گفت اباوی اباوی حالا پدر غالب شده بر مادر به خاطر اینکه پدر قوامه این، یعنی پدر و مادر والدین پدر و مادر والد پدر مادر میشه والده نمیگن والدتین پدر غالبه چون پدر سرپرست خونه از پدر قوام نسب انسان به پدرش برمیگرده و مادرش الله گذاشته للذکر مثل حظ الذکر حتی در ارث و میراث مرد دو برابر زن میبره قانون الهیه اینجا هم پدر غالب شده به خاطر اون قدرتش بر مادر خب اینجا ما قبلا گفتیم کل سیاق داستان بر این بود که یوسف برادر تنیه بقیه برادراش نیست الا بنیامین اونها از مادر دیگرن یوسف علیه السلام 10 سالش بود مادرش فوت شده حالا اهل کتاب نكتب کردن بعدم صحابه نكتب این چیز دیگه تو تفاسیرم یاد شده مادرش فوت شده اینجا هست که میگن منظور از ابوین پدرشه و زن باباش مادر بقیه برادرانش الله از باب این که بگه به مسلمان همسر پدر شما جای مادر شماست و مادر شماست اینجا کلمه این ابوین رو به کار برد هر کسی باید بدونه محرمشه همسر پدرش و جای مادرشه باید وظیفشه که بهش احترام بگذاره نه نمیشه و نمیداره مادرمون نراد میشه و نم قانون الهی شرع الهی. بخواه یا نخواهی مادرته ابویی حالا بعضی مفسرین اومدن یه حاشیه باز کنن نه منظور خالش بوده و خالش اوورده و خالج جای مادر خالچ چه ربطی داره به اینکه کلمه ابوین به پدرش و خالش الله به کار ببره. پدر غالبش مر مادر مثل والدین مثل ابوین بر پدر و مادره حالا مادرش اینجا نبوده گفتیم فوت شده پس اینونه این کیه امرای پدرش محال کس از باشه ممکن نیست کسی پدر و خاله نمیگه ابوین زن همسر پدرشه مادر بقیه برادرشه مادرشه مادر برادراش مادرشه بخواد یا نخواد با آنها خلوت میکنه فآوا ایوا میده یعنی اونا رو یه جا و مکان خاصی میده کنار خودش نزد خودش میرد وارد قصد میکنه خلوت میکنه با آنها، و قالت خلو مصر انشا الله امین وارد مصر بشید تا زمانی که الله بخواهد در امن و امان باشید انشاء الله و آمینین. این نیست اینجا که مثلا ما بگیم اینجا ادب در دعاء مراعات نشده اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و ما را من کرده نگید الله اگر دوستداری به ما بده این کلمه اگر دوست داری اگر الله بخواهد حالا بده، میخوای الله بده رسول الله صلی الله ما را من کرد این خلاف ادبه وقتی که چیزی از الله میاد الله بر الله به من بده ولی خودش میدونه الله که این به مصلحت نیست بر الله شفام بده نه اگر میخای شفام بده الله شفام بده الله میدونه شفات بده اینجا یوسف علیه السلام نمیگه که که الله اگر میخواد اینا رو امن و امان بده نه امنیت بده بحث اینجا مشیت خبریه تا جایی که الله بخواد شما در امن هستید وارد مصر بشید جایی که الله میخواد تا وقتی که زمانی که الله میخواد میدونه که اینها سرزمین ابدیشو نخواهد بود خصوصا یوسف علیه السلام قضیه را میدونه آیه بعد اینا مشخص میشه که یوسف میدونه که سرزمین ابدی اینجا نیست مصر چون میدونه حالا میاد قصش پس تا وقتی که الله بخواد شما اینجا در امن باشید اینجا اهمیت امنه عیسی علیه السلام همه کاره پادشاه امس بود انقلاب بکنه زما رو به دست گرفت برادراشم اومدن سربازان همه داره برادراشو نوهاشون و اومدان میتونه یک حرکت سیاسی انقلاب چیزی انجام بده در دربار همه کاره شده زمان امور تمام به دستش داده پادشاه ولی کارو نمی کنه اصلاً براش مهم نیست اصلاً پادشاهی براش ملک مهم نیست هدف این نیست هدف عبودیت هم مجمع عبادت و توحید مردم رو داره مثل اون چیزی که در زندان داشتیم ما با دعوت شروع میکنه هم مقام پیامبران همه همین بوده این داستان و اینو میخواد الله به مردم بگه این مردم دنبال ملک ریاست نروید یوسف کجا بود کجا بردیم ما هستیم که بالا میبریم ما این که بخوام پایینم میاریم عجله نکنید در مقابل اون شرری که بر شما که بخوای با دست خودتون از بین ببرید الله بخواد میکنه هر کسی باشه در اون جایگاه در اون مقام در اون پست پادشاه دینش فرقه چناچ گفتیم در زمین بس دینش دینی دیگریه دینی وسنی هست بتپرستیه این پیامبر الهیه شریعتش اسلامه نمیاد بگه که این کافره پس بر علیهش باید خروج بکنیم باید او را بکشیم راحت میتونه ترورش بکنه تو قصد دیگه یا کسی سرباز پوری چیزی میداد خزانه ها که دست خودش بود راحت ترورش بکنه ولی این چیزی ما نمیبینیم همش سب میبینیم همش دعوت میبینیم تو این قصه داستان اون چیزی که مهمه برای یوسف امن و امنیته. انشاءالله و آمینین. جا در امن باشید. مهم اینه که امنیت خودتون در نکنید نعمت امن چقدر مهمه. وقتی که نعمت امن ازت گرفته بشه. نمیتونی نه از جایی به جایی دیگه بری نه تجارتی بکنی. نه خوابی داشته باشی. نه نمازی بکنی. نیست، امنیت نیست. بعضی‌ها دنبال فرصتی ان که این امن را به هم بزنن، امنیت را به هم بزنن، به بهانه چی؟ این که این حاکم کافره، این حاکم حکم غیر منزه الله می‌کنه، این با شورشی، با انقلابی، فقط دنبال که این امنیتی ب... که نعمتی از نعمت‌های الهی است بر سر من و شما، این نعمت را از بین ببرن مردما. ظهر الفساد فی البر والبحر به کسبت ایدی الناس. مردما ان الله کنخسین. الشر و شرور و بدی و بدبختی و فلاتت بیاد. مردما که با دست خودشون این چنین هن. این چنین می‌کنند، تصادر میارن. پس امن نعمت بزرگیه. الله هز من شما این امنیت رو نگیره در جانمون در مالمون در فرزندانمون هم نعمت بزرگیست باید شکر گذار و سپاس گذار الله باشید در مقابل این امنی داریم بار الله شکرت از این امنی که ما در جان و مالمون داریم خب پدر و مادر رو. گفتیم همسر پدرش بوده نه مادر حقیقیش چون مادرش فوت شده و رفع ابویه علال هر دو را بر روی عرش کرسی تخت پادشاهی میاره و خر رو له سجده اونجا هست که سجده کنان میان از باب تعظیم به یوسف علیه السلام همه حتی پدر و همسر پدرش همه سجده میکنن حالا گفته شده که این سجده در هیئت رکوع بوده از باب تعظیم این در ادیان گذشته بوده در دین ما منع کرده چنانچه معاذ رضی الله عنه میاد سجده بکنیم برای رسول اساس منعش میکنه میگه لو كنت احدا ان يسجد لاحد الا امرت امراه قرار بود بکسی بگم سجده بکنه میگفتم به شوهرش سجده بکنه سجده در شرع ما ممنوعه حرامه اگر از باب پرستش باشه شرک اکبره و اگر از باب تعظیم باشه گناه کبیره از کبایره چون رسول الله ما را من کرده خب اینجا در شرع ما قبل ما درست بوده الله اجازهشون داده که از باب تعظیم به پدر مادر یا به بزرگشون سجده بکنن حالت رکو احترامی تعظیمی داشته باشن اینجا وقتی که پدر بالاس و یوسف هم بالاس وارد قصد که میشن اون برادرا سر به سجده میدارن بعد یوسف رو به پدرش میکنه میگه و قال یا عبتی داستان تا آیه 100 که الان رسیدیم از اون آیه اول و دوم تا الان آیه 100 صد تا گذشت درس و عبرت گذشت اینجا است یوسف علیه السلام رو به پدرش میکنه و قال یا ابتي هذا تاویل رؤیا من قبل این همون خوابی از تعبیرش که از قبل دیدم گفتم خواب دلیلی بر وحدانیت الهیه الله از قبل خب میدونه که چی قراره بشه الله آگاه. اگر الله نبود یک تا نبود پس کی به یوسف خبر داده بود که چنین واقعی رخ میده چنین حادثه رخ میده یوسف رو پدرش میکنه و میگه پدر این همان خوابه بچه ها و باقیه ها بدونن اینها ملهم بودن اینها وحی الهی بر ها نازل میشده وقال یا ابتی هادا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربي حقا بحقیقت و واقعیت بیبست این حقیقت و خوابی که من دیدم این هم تعبیرش و قد احسن بی اذ اخرجني من السجن و جاء بكم من البد والله اکبر شقه کریمه چپ اخلاقی داره یوسف علیه الصلاه و السلام اونجا برادراشو بخشید نگفت منو بیرون آورد از چاهی که شما من توش انداختید گفت اخرجنی من سج از زندان مرا آزاد کن چرا چون اون ملامت و سرزنش لا تفریب علیکم دیگه برای شما ملامتی نیست دیگه نیست اونو دیگه اصلا به چشمشون نمیده به قول خودمون اصلا به روشون هم نمیاره گذشت رفت مظرخایی کردن اقرار به اشتباهشون کردن توبه کردن رفت چشپوشی کرده تمام مننتی دیگه رو یاد میکنه میگه منم همون یوسفم هم که زندانی بودم الله مرا آزاد کرد منت اسکی میبینه از الله الله مرا آزاد کرد نت الله بر من وقد احسن نبی نهایت احسان الهی انسان نعمت را ببینه کور نباشید والله ما در ناز و نعمت والله زندگی که ما داریم پادشاهان 200 سال قبل آرزو نمی کردن. حتی اون دستشویی که خودمون داریم اون پادشاه ها آرزوشم نداشتن دستشوییشون تو صحرا و گلی و فلان و باد شاه بنگام می بیرون با هزار درد و سر نه چراغی نه برقی کولر تو خوابم نمیدیدن که کولری پنکه‌ای باشه 200 سال قبل پادشاهان آرزو هم نمی کردن. تو خوابم نمیدیدن این زندگی که ما داریم شما نگاه که چقدر ما کفران نعمت میکنیم چقدر ناسپاسیم ما چقدر ناشکریم ما همیشه ابراز دل تنگی دارین بی پولی داریم بدبختی دارین و قد احسن بی احسان الله ببین مثل یوسف علیه السلام و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن من موقعی که مرا زندان رها کرد آزاد کرد و جاء بكم من البثاء و نعمت بر من گذاش که شما را به نزد من آورد الله اکبر خوشحاله پدرش و برادرش اومدن نزدش الله اکبر عجب کرمیه واقعا والله آدم تعجب میکنه از کرم یوسف علیه السلام نبون برادرا که خونش تشنه بودن خواستن او را بکوشن و بعد تو چاهش انداختن نبی این مؤمنی که به کمال ایمانش رسیده در این جایگاه واقع شده اونم در این مقام رفیع پادشاهی و این چنین از اومدن برادرش به عنوان یک منت و نعمت یاد میکنه الله و جلوه جم در جم میگه من خوشحالم به شما اومدیدا این منته الله که شما را اوورد از اون زندگی بدویت سهرانشینی شما را اوورد از اونجا به این شهر و به این مدنیات این زندگی شهری که درش داد و ستاد و تجارت و زندگی نعمت رسول الله صلی الله علیه و سلم توسیهش بر اینکه انسان از زندگی بدویت فاصله بگیره من بده جفت ادبیات تنهایی در صحرا ز نیکلن انسانو قاسی القلب میکنه خشک میکنه تا جایی که انسان میتونه در شهر نمیگونه با داد و ستد با مردم داشته باشه تعامل داشته باشه تعامل مهمه هر چقدر اذیت ببینید الذی یعیشو مع الناس و یصبر علی ادم خیر من الذی عزلو کسی که با مردم تعامل میکنه زندگی میکنه و صبر میکنه بر اذیتشون بهتر از اون که عزلت انتخاب میکنه گوشیگیری انتخاب میکنه گوشیگیر نباشه. در دل خوشحال یوسف که برادرهاش اومدن و بر زبان شکر و سپاسگزاره طرفی گفت تم شب گذار و صبح گذار الله که برادرش را اوورده به نزدش از طرفی هم ابراز میکنه ای برادران من خوشحالم با این قدومت والله دلش خوشحال انجاد الان پرپر داره میزنه این همه محرومیت کشیده دوری پدر کشیده دوری برادران کشیده تک و تنها الان خانوادهش دلش آباد شده آبادی به دل قصد داشت باغ داشت رود داشت جوب داشت چی نداشت یوسف علی السلام دلش قلبش آرام نبود قلبش شیفته پدر بود محبت پدری بود مهر پدری بود مهر مادری بود مهر برادری بود مهر خواهری بود قلبه قلبه که نیاز به مهر و محبت داره نیاز به آرامش داره مال دنیا آرامش نمیاره. والله خوشی در مال دنیا نیست یوسف کمی نداری کم بودی نداشت مهر و محبت و ارزشش. قصدر سخنان یوسف علیه الصلاة والسلام. و السلام وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي شما را اوورد منت الهیه نعمت الهیه بر من شکرگزارش شیطان بود که میان من و شما اختلاف انداخت شیطان بود که میان من و شما اختلاف انداخت این نزغات شیطانیه این وسوسه شیطانیه شیطان دشمن من و شماسه ای برادران مقصرن خودشون احتراف دارن به خطاشون که ما مقصر بودیم حمدی بود این اشتباهمون بلی که یوسف با این وجود از کرمش میگه نه شیطان بود شما را فریب داد شیطان بود که گولتون داد تون داد بترسیم از اینکه دامن بزنیم به اختلافات و به کینه و کدورت یاد بگیرید بخشش یاد بگیرید صفای قلب یاد بگیریم مهر محبت یاد بگیریم پاکی قلب قلب صاف و پاک به این میگن این همه زل بهش کردن ولی با این وجود در دلش نسبت برادراش چیزی نیست عوض بهشو میده میگه این شیطان بود که میان ما اختلاف انداخت اختلاف شر والله اختلاف شر ظاهر شر روی گردانی از همدیگر شر بعضیا میگن اختلاف امتی رحمت دروغ والله حدیثی نداریم از رسول الله صلی الله علیه و که اختلاف رحمت اختلاف شر چنانچه ابن مسعود رضی الله عنه میگه میگه خلاف و شر اختلاف شر ولا يزالون مختلفين همجنا مردم در اختلاف الا اونایی که مرحومن اونها در اختلاف نیست، اختلاف شر اختلاف رو الله راه گذاشته برای زدودنش برای حلش چرا الله در قران میگه فتن نزعتون في شيء فردوه الى الله والرسول چرا گفت اگر تنازع اختلاف کردید بربگردید با الله و رسولش قرآن و سنت چرا برای حلش نه اینکه همینطوری رها بشه به قول بعضی موسا بدینش و عیسی خیر قرآن و سنت داریم برای حل اختلاف اختلاف شر ان رب لطیف لما یشه بار الله من پروردگار من لطف داره لما یشه اون چیزی که بخواهد این ربی لطیف لما یشه لطف الله همه جرا فرا گرفته الله چقدر لطف داره بندگان و بندگان این لطف الهی را نمیبینه این ربی لطیف بار الله من پروردگار من لطیف لطف و احسان کرد در حق من و شما اینطوری ما را جمع کرد با این وجود که ما حرف الله را گوش نکردیم از اینکه حسادت نکنیم و دروغ نبرزیم چیتون اومد فریب و من داد تابع هوای نفس منو تابع شیطان شدیم ازش پیروی کردیم ولی با این وجود الله ما را نجات داد از اون مکر و نیرنگ شیطان لطف کرد در حقمون پروردگار عالمیان لطف داره ولی مردم لطف الهی و عنایت الهی را نمی بینند الله به بندگانش ولی بندگان نمی بینند کورند قلبشونو بستن قلبشون تاریک شده سیاه شده ان ربی لطیف لما یشا انه هو العلیم الحکیم الله علیم میدانت والله حکیمه حکیم در حکم شرعیش و حکم قداریش الله هیچ چیزی را بدون اساس نگذاشته از اون آفرینشش کی کجا باشه یوسف کجا باشه یعقوب کجا باشه پادشاه کجا باشه سربازانش کجا باشن چطور باشن کی بی میره کی زنده باشه حکیم در حکم کونیش حکیم در شرعش نماز چطور بخونیم روزه چطور بگیریم الله حکیم در این احکامی که بر ما گذاشته و این حکمش اساس علمشه با علم بوده این طوری نبوده که از روی جهل باشه همینطوری باشه نه الله که از روی علم که این حکمتها را گذاشته ربی قد اتیتنی من الملک و علمتنی من تاویل الاحادیث ربی بار الله تو هستی که به من این ملک را دادی تو هستی که به من این ملک را دادی همکاره امپراتوری مصر پادشاهی مصر ملک الان که یوسف بر تخت عرش پادشاهی نشسته همه کاره مصر شده بار الها تو هستی که این ملک را به من دادی یاد می‌کنه این منته و نعمت الهی و علمتنی من تاویل الاحادیس تو هستی که مرا علم دینی دادی علم تعبیر خواب دادی فرق گذاشتی بین من و دیگران در این علم اینا همه انواع توسل الله داره بهمون یاد میده توسل به افعال الهی چه اون فعل الهی در اینکه یوسف علیه السلام به اینجا برسه چه به اون علمی که او را به اون مزیت داده با اون حل. فاطر السماواتی والارض الارض بار الله تو خالق آفری دیگار آسمان و زمینی بازم توسل بچی فعل الهی آفریننده توی بار الله انت ولیی فی الدنیا و الاخره دوتا تعبیر میشه کرد انت ولیی الان توسل میجویه از توسلی به توسل دیگر توسل به فعل الهی در این که الان او را الله بر این تخت پادشاهی گذاشته علم شریعت بهش داده و تو آفریننده ای منی ستا تو هم یاور منی در دنیا و آخرت تو هم یاور منی چون انتخاب شده ای الهیه این یک معنا یا به معنای دعا پس یار من باش بار الها در دنیا و آخرت مرا یاری انتولی انت ولی تو ولی من باش یعنی تو مرا یاری در دنیا و در آخرت این معنای ولایته یاری دادن این ولایته حالا چه به معنای خبرش باشه تو یاوری من و یار من خواهی بود در دنیا و آخرت چنانچه من تو اینجا یاری دادی و چه به معنای که بدون شک به معنای اینه که بارله ها من یاارده منرا به خودم رها نکن تو ولی منی ولی من این اون نیست نپادشا نه ها نه دوست نرفیق نه, نه پدر نمادر نه بارلا ها تو هستی م رو به اینجا رسوندی تو یاره من بودی تو کل این مسیر زندگی تا من تو من به اینجا برم بارله ها تو مرا به اینجا رسوندی ولی من توی همه کاره من توی تو هستی که میدی روزیم دسته توی بارله تو ولی منی ولی با سرفررس من توی همه کاره من توی از تو میخواام فقط از تو کمک میگویم این نهایت چیه؟ توهی عبادت پرستش یک تا پرستی این نمادش ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلمان و الحقنی بسالحی توفنی مسلمان برا لها مرا مسلمان بمیران این قمغصه هر مسلمانی باشه که حسن خاتمه داشته باشه فنس الله بخواهد بار الله برام حسن خاتمه برق بزن با حسن نیکی از دنیا برم و مرا از اینکه به بدی از دنیا برم نجات ده بار الله حسن خاتمه به همه ما بده مثلا باید بترسه از اون ای که روحش کشیده میشه و نمیدونه روحش با کفن جهنمی کفن میشه یا با کفن بهشتی آدم باید بترسه از اون لحظه پیانبره در این مقام واقع شده در اون مقام نبوت یار و یاور خودش رو الله دیده در طول مسیر زندگیش ولی با این وجود ترس داره که با شرک و معصیت از دنیا بره بار الله مرا مسلمان به می ترس اینو ابراهیم بهشون یاد داده بود از قبر و جنوبنی و بنی نعبود من و فرزندانم را از شرک دور کن میترسید از معصیت میترسید از شرک همیشه این ترس در قلبشون بود از اینکه الله شاید اونها رو نبخشه شاید پاشون یک جای بلغزه و جهنمی بشن بار الله مرا مسلمان بمیران نباید یاد بگیریم مغرور به کار خودمون به عبادت خودمون نشیم شاید ما هم جز کسانی باشیم که بعد از کلی عبادت در زندگی خود با سوء خاتمه از دنیا بریم باید بترسیم توفانی مسلمان بار الله مرا مسلمان بمیران حالا بعضی گفتن که حالا یوسف به این جایگاه درخواست مرگ میکنه خیر اینجا درخواست مرگ نیست و الحقنی بالصالحین منو ملحق کن به اون صالحینی که قبلا از ابراهیم و پیامبران دیگر اشا و نوح نه که الان تقاضای مرگ داره رسول الله صلی الله علیه و سلم می میفرما کسی مصیبت های دنیا برش سرازیر شد ناچاران خواست دعای مرگ بکنه از الله چی بخواهد اگر اگر بار می دانی که زندگی من برام بهتره مرا زنده نگه دار و اگر مرگ من برام بهتره مرا بمیران این نهایت دعاست که در صحیحه این اومده ولی که نباید انسان تقاضای مرگ بکنه همینطوری مرا بمیران نه اگر مرگ به مصلحت دنیا و آخرتنه من رو به میران. خلاصه بحثمون این داستانو نقل میکنیم از حدیثی که روایت شده در بحث یوسف علیه السلام که گفتم امروز یکم درس طولانی تر شد به خاطر که رب داره به اون ابتدای بحثی که شروع کردیم آیه 100 تام دا یک داستانی خواهد اومد یوسف که گفتیم میدانست که سرای ابدیشو نیست مصر سرای دائم قومش نیست که در مصر باشه میدونست که یک روزی باید خارج بشه یوسف قبل از وفاتش عهد و میثاق میگیره از یوسف علیه السلام میثاق و عهد میگیره از قومش اینکه وقتی که میخوان از مسبرن برن اون با خودشون هم ببرن جسدشو ببرن با خودشون. روزی اعرابی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و علیه الصلاه والسلام درسلیس ایه البنی امتصیکارد روزی اعرابی میاد نظر رسول الله صلی الله علیه و علیه رسول الله صلی الله علیه میگه سل بخا چی میخای اعرابی گفت شطور بوز رسول الله صلی الله علیه میگه یا حداقل مثل اون پیرزن برای اسراییل سید بشید یعنی مثل اون پیرزن بنی اسراییلی کدوم پیرزن؟ اون عجوز پیرزن بنی اسرائیلی. رسول الله صلی الله علیه و گفت میگه این پیرزنه کیه گفت نه یوسف وقتی که وفاتش فرا رسیده بود نزدیک بود که بمیره بنی اسرایل اسراییل یعقوب بنی اسرائیل فرزندان اسرائیل و نوادگان همه رو جمع میکنه ازشون عهد میگیره عیسی من مردم زمانی که از مصر میخوای برید بیرون جسد من رو خودتون ببرید موسا بنی اسرائیل رو میخواد بلند بکنه از دست فرعون فرار بکنه بیاد به سر شام دوباره بر بگرده. از مصر فرار بکنه موقعی که می‌خوان از مصر فرار بکنن راه گم میکنن. میخوان برن الان از مصر فرار کنن نمیتونن. هر راه میرن به موسی میرسن راهی برای خروج نمیاد حالا کجا فرار کنن باید الان دست فرعون فرار بکنن الان فرعون اونجا پادشاه مصر بود حکم عوض شده الان زمان موسی علیه السلام الان فرعون برای اون حاکمه یکیشون گفت که مگر شما میتونید برید بدون جسد یوسف یوسف عهد و گرفته تا جسدش را از اینجا نبرید نتونید نمیتونید بری با جسد و بردارید تا بخب جسده کجاست؟ حالا دنبال جسد می گردیم موسیاح. خب کی هست که این جسد رو میدونه کجا جسده یوسف السلام نکنید حتی ادانهه گذشته اهمیت به جسد نمی دادن مزاری نبود قبلی نبود زیارتگاهی نبود پی بر اله فوت شده و هیچ کس نمیدونه قبرش قبلش چون انسان که مرد دیگه بین خودشو رو الله او در دنیای ورزخیه. موسیله اثسلام نمیدونه جسد یوسف السلام کجا دف شده؟ اونم یکی از اجدادشه یوسف ال السلام بل نمیدونید این جدش کجا؟ خوابنده شده میگن که یک پیرزنی هست که میدونه اون فقط میدونه همه بعد خودشون قرار میکنن میگه که بله یوسف از ماها بنی اسرائیل میثاق و عهد گرفته که بدون جسدش از مصر و نمیتونیم من بریم و اون پیرزنی هم میدونه رسول الله صلی الله علیه و آله این داستان رو از با به توصیه به ما داره میگه که یاد بگیریم از این پیرزنه خب موسی میگه کجاست این پیرزن رو پیداش میکنن این پیرزن پیرزن میارن نزد موسی علیه السلام موسی علیه السلام میگه پیرزن میگه خب این جسد کجاست پیرزن رو موسی علیه السلام میکنن میگم نمیگم تا اینکه به من عهد بدی پیامبر الله بهش عهد بده چه عهدی گفت که عهد بدی که من با تو در بهش باشم الله اکبر اون عربی بوز شتور میخاد. شما نمیتونید مسیحی پیرزن بنی اسرائیلی بشید. شیر خاص از موسی عليه الصلاه ای موسی عهد به من بده که با تو در بهش باشم ایمان به با الله رو نگاه کن. عهد بده عهد. الله وحی میکنه بر موسی عليه الصلاه والسلام میگی این عهد را بهش بدید. او رفیق تو در بهش منت و فضل الهی بر این زن مؤمنه. این پیرزن. بگید به اون زن که دعاش استجابات شده رفیق تو موسی در اون بهش دعا. تو دستپایی نگیرید از الله بهشت اعلی بخواهید رفاقت رسول الله صلی الله علیه و وسلم بخواهید که رفیق رسول الله صلی الله و وسلم در بهشت اعلی باشید یاد بگیرید اساساً میگه از این پیرزن یاد بگیرید بعد اون پیرزن یاد میگه پاس جسد یوسف انجاز کنار ال جوبی یک آبی بود اونهاو کنار میزنن بعد جسد یوسف رو بیرون میارن انگار میگه نوری میفته در جلو راهشون مسیرشون باز میشه و نجات مییابند و راهو پیدا میکنن بعد از اینکه جسد جسدو با خودشون حم میکنن الله اکبر انجیلین الله نوشته که کرامت پیامبران الهی حفظ بشه کرامت جسد یوسف علیه السلام حفظ بشه و انجیلین بنی اسرائیل هم نجات بیابند و با خودشون جسد یوسف علیه السلام حم بکنن. هنوز قصه و داستان ادامه داره از الله وفیقشو میخواییم که ما را رفتاری هدایت بکنه که رفتار نبوی باشه، پیامبران الهی باشه و به ما حسن خاتمه عطا بکنه با نیکی و خوشی و با رضویتش اون موقعی که از ما خشنود ما را از دنیا بیمیرانه و اون موقع را ما را از دنیا ببره سبحانه کنال بحمده که سبحانه کنال بحمده صلی و علی محمدین و علی محمد